میگوید. این روزی که خود قرآن در کمال استراحت اعلان میکند این این مردم معذب شدند، سره معذب شدند به خاطر اعمالتون، به خاطر افتارتون، به خاطر سوالانهاشون در مقابل عمر الهی اون روزی را که مردم اون سرنوشت محتوری که از عمل خودشم فیدا می کنند و بشار نکبت و بزدخشی می کنند قرآن اون روز را به محتوری اون نه چار تنبست نه پنش نه جون نه چندبست نه یزتنبست نه نه اول نه نه نه نه نه هر روزی که به اعمال خود در افتار شمند و در اعمال خودشون دستخواد زمند در روز نشت جد. القادر هلا باید خود غرانت و جیمی استودیم دان. خدا القدرو علا من فوق کم من سعی عریبوت آویال بیکم من خودش ما بیباق علیم ما که ما اجازه میکنیم از ما دیداری نیستیم اتفاقا ما الان جدفانی تمام روزه های ما نهست. روزه عدالت ما هم نهتب. روز اول فروردین در روز دو فروردین و مشار و مستیده و و ما به نست قرآن مزید مردم معذیمی هستیم مردمی هستیم که خودمون دیگان افتادیم ما من نلل مسلمان امروز در ایام نحسات ازاد الهیتی میبینیم مذهل ازاد اسرائیل خراح حامل خودم امس قرمه ها جزد در راه الزبائی مدیس منی و تاریخ اعصاب علیه یک دیگر خدم برنداشتیم خدم ما الله خارج بسیم چه باید بکنیم بریم گرون سبزه بریم جره بزنیم از معسی خارج بسیم با و پختن از معسی خارج بسیم با سبزه رو در روز تیزه از خونه بیرون ریختن از سبزی خارج بسیم بیش آره چرا خیلیمت از نیمی این روز میره از بندی توی بازار از خودت بیرون بیا از این رفتار زشت خودت میروندی و از این عادات خودت از, خود از این ملکات و صدیبی که به اون گرفتار هستی از, از این ها گناهی دارد خونه چه گناهی دارد زندگی چه گناهی دارد از از سرزه گروه زبان که تاریش اختار به من ننگیر مردم هست که روز سیزده رو به عنوان سیزده دار میروند من نمیدارم این که اسم تنگیل افکار فرده سه افکار روز خودشو می که نشکلونم نمیگن که برای از شربیت می روز زلاده خاتم اولندیان که باید روز تعطیل باشد و مردم بیار تعلیمات این بزرگوار استفاده بکنند ما روز تاکیدی ندارید روز بلاده ساهم مردان علی ابن عبی روز بلاده حسین ابن عبی برای ما روز بلی که و هماقه فراس روز تاکیدید جدنید این مسائل اسلام نیست ابدا به من به حساب نداره که تمام اخبارت مراجع کردن متاسفانه بعضی از علمای مزرگ ما یک سیزای راجب اختیارات روزا نویستن بسید مراجع کردن دیدم اون هم او او او حسابایی که مردم رو به اسطلاح از منجمه ها بخیال خوبشون برگردن از صدر وردن به صالح اندختن یک سیزای بدون اختیار رو نغیر کردن ولی با اخبار بسیار مرتبری در این زمینه داریم که با گفتن تنبال یع اوزای خانه که دلالات میکنند در شی و در شی و در شی امروز برای سالن کار شاعر در برای سالن کار مشایعنا در اسلام می لذت می سرا